بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عامر عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله والصحبه يجمعين أما بعد سدل شاردهمين باب الزباب السهياد المفرد لفتي من بخاري رحمه الله واسكن فسيح جناته باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد جناه و فردی که برادر مشورت میده در اون مشورتی که بینی نیست به مشورت میده بش حدیث حدیث رضی الله عنه وغفر الله له و قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقول فليتبوأ مقعده من النار من تقول علی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که حرفی رو به من نسبت بده که من نگفته ما لم اقل نگفته باشه فلیتبوا مقعده من النار فلیتبوا اصل این متبوع شدن یعنی اینکه جایگاهی را در جهنم الله براش مشخص بکنه یعنی یک نفری یک دعاییه یعنی الله جاش را در جهنم قرار بده جاش جهنم باشه اون شخصی که به من حرف و سخنی نسبت بده که من نگفته باشم این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث به اشاره میکنم. شخصی بیاد دبی که نه من دروغ را به مصلحت میگم اینجا. من دروغ بدی که نمیگم. دروغ دارم میگم مردم بیا نماز بکنم بیا روزی بگیرن. دروغم که به نیست من دروغم به خوبیه. من دروغم به نیست به خوبیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی دروغی بگه جوش جهنمه. خصوصا دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر قصسان دروغش به رسول الله صلی الله عليه و سلم اجروشه حدیثی را نقد کردی که دروغ باشه چطور در صحیح مسلم داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایان كذب فهو احد الكاذبين فهو احد الكاذبين کسی بکنه از رسول الله صلی الله و سلم حدیثی که دروغ باشه یکی از اون دروغگان خودشه دروغی اولی که دروغ گفته و دروغی دومی که داره این حدیث دروغ را داره میکنه به الله قبل از مطمئن شدن به مردم نقد بکنی بگیم رسول الله اصلا چی نین گفته از روی جهل و اون حدیث بعد دروغ در بیاد خطرناکه خیلی خطرناکیشم اینجا دارین میبینی حدیث را نقد کردی به مردم که دروغ باشه تو یکی از دروغگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن عقوبته دروغ بچیه من تقول علی ما لم هر کسی چه قصش بد باشه چه خوب باشه هر کسی دروغی گفت بر من که نگفته باشم دروغی به من نسبت داد حرفی که نزدم به من نسبت داد جاش جهنمه خطرناک خطرناک نیست طرف حسابتر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه چون دروغ بر رسول الله اصلا دروغ بر هر کسی نیست دروغ بر رسول الله اصلا دروغ بر الله که برایش وحی داره می کنه و من ينتق عن اله ان هو الا وحی یوحى رسول الله صلی الله علیه و خودش که حرف نمی زنه وحی الهیه و الله جل جلاله در قران میگه و من اظلم ممن افترى على الله کذبا چه زلبی شخص به الله نسبت بده یک سخنی بیاد مشروعیتی عبادتی ازباب دل سوزی خیر کار حرامه دین محتاج من و شما نیست الله هر چیزی که ما نیاز مندشیم به ما گفته اليوم تو لکم دینکم تو علیکم نعمتی نعمت ها بر ما تمام شده دین کامل شده وقتی که تو بیای دروغی را تحسین بکنی به نفع دین یعنی دینت ناقصه دینت نیاز به کامل کردن تو داره که تو بیای کاملش بکنی خیر دین الله جل و علا شریعت الهی سنت النبوي عليه الصلاه والسلام نیاز و محتاج منو شما نیست دین مال منو شما نیست دین مال الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم ياذن به الله ام لهم الله در قران میگه میگه شریکانی میگه الله داره که بیان تشریع بکنن اون چیزی که الله اجازش نداده و نگفته لم یاذن به الله ام لهم شركاء شریکی داره الله اینا شریک الله بودن الله بهشون اجازه داده بود که چنین این حرفا رو به الله نسبت بدن یک از بدعات های بزرگی که در اسلام پیش اومد همین بود می می که شخص می اومد میگفت که نه نه من دروغ میگم به نفع دین نه بر علیه دین نحنو نکذبو لهو ولا علیه رسولت سر فرمودن من کذب علیه کسی که بر علیه من سخن ناروای رو ببنده میگه ما بر علیهش که سخن ناروه نمی بندیم ما به نفعش سخن اون ناروه یا اون دروغ را داریم نسبت میدیم این از گمراهیه این از انحرافه. دین محتاج تو نیست که برای دین تو بیای دروغ ببافی محتاج تو نیست الله در قرآن میگه یوم اکملت لکم دینکم دین رو کامل کردن بر شما خاطر همین حالا میگن کسی که از علم دروغ بگه مرتکب کفر اکبر شده چون قرآن رو داره نقض میکنه حالا هرچند که حالا بحث کفر اینا مفصل ابن کسی در مختصر علوم حدیث ابن سلاح میاره بحث مصالحش و بحث احکامش اینا فصل اونجا هست ولی خب خطرناکه یعنی تو این حد میرسه شخصی که از عمد دروغ بر رسول الله صلی علیه و وسلم ببنده مرتکب کفری از کفریات شده چون داره دست و شریعت الهی میاره شریعت الهی اون فرامینی که الله انتخاب کرده بر من و شما که مصلحت دونسته مصلحت دونسته برای ما نه اینکه ما خودمون برای خودمون مصلحت بدونیم و اون چیزی که به مسلحت میبینیم به مردم حالا چه از باب تشویق چه از باب هشدار دادن بیان بازگو بکنیم. مثلا طرف اومده مثل نوح ابن ابي مريم یک از ذروق قرآن بود که در شأن فضائل سوره های قرآن برای که مردم تشویق بشن قرآن بخونن دروغ میگفت سوره نوح بخونید برای فلان چیز فوره سوره جن بخونید برای فلان چیز سوره فلانی را بخونید درسته ما بعد از سوره ها داریم فضیلت در موردش اومده مثل سوره اخلاص سوره فلق سوره ناز ولی مثلا سوره رحمان رو شما ندارید سوره واقع رو شما ندارید حدیث صحیحه داشته باشید خیلی از سوره ها شما ندارید مثل سوره یاسین تبدیل شده به بدعت مثل سوره یاسین خوندن سر قبر یا تو قبر نه حدیث صحیحی داریم نه مسندی داریم نه چهار تا جاهل اومدن دروغ گفتن و این دروغ ها تبدیل شده به این بدعت به این بدعت ها اینه که ما باید بر باشیم دینمون رو از هر کسی نگیریم و در دینمون دقیق باشیم و تحقیق بکنیم قبل از اینکه اون عمل رو انجام بدیم خیلی از اعمال الان اینجا دروغ رو به عنوان اینجا داشتیم تو این ما اینجا بیان کردیم دروغ دروغه کاری به نیت ما نداره که نیت چی باشه قتل قتله کاری نداره که نیت چی باشه سنگ و کردی طرف را کشتی مرتکب قتل شدی نه من نیتم خیر بوده نه نیتم فلان بوده قتله درسته انم العمال و به نیت عمال به نیت ها داره حساب و کتابت با توجه به نیت دست الله روز قیامت که بحث محاسبه در این دنیا مسئله دیگره خب ادامه حدیث چون ضعیفه ما نخوندیم ادامه حدیث که امام بخاری ازش برداشت کرده و من استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغیر رشد فقد خانه این قسمت ضعیفه این قسمت, زیفه. این قسمت زیفه. دروغ نیست ساخت وقتی گفته میشه ضعیف شما طران تو بحث احادیث ضعیف این مسئله تو ذهن شما منعکس نشه چون ضعیفه یعنی مردود مطلقاً و دروغ نکنید این از باب یادواری بگم حدیث دروغ فرق داره با حدیث زعیف حدیث دروغ حدیثی که دروغی توشه و دروغش واضح آشکاره حدیث زعیف به اون مرتبه قوت و قدرتی نرسیده که ما بهش استناد بکنیم حدیث ضعف داره هست یکی از راویان از لحاظ حافظه متقن نبوده ما میگیم که این شخص مادامی که از لحاظ حفظش و حافظش متقن نیست یکی دیگر اگر بیاد رو تایید بکنه مثل خودش باشه این رو ما میتونیم بپذیریم مثل بحث حدیث حسن لغیره ما داریم تو علم مصالح حدیث و اون دلیلی که علما گذاشتن برای این قاعده ای که برداشت کردن از قرآن فعلا یکون رجلین فرجل و امرا تانی ممن ترضون من الشهدا زن زیف الله میگه در گواه و شهود اگر دو مرد نبودن یک مرد و دو تا زن یعنی دو زن گذاشتن در مقابل یک مرد دو تا زن در مقابل یک مرد عادل انتقل احدا فدک احدا هم اخرى اگر یک پش لغزی دیگری یادوریش بکنه. یعنی دو تا زن که ضعیفن همدیگر را قدرت میدن قوت میدن. حدیثسم همینطور اگر دو تا دیدیم که ضعفشون یسیره اومدن یک حرف و را رو برایمون نکردن از یک راوی این دلت برش قدرت اون حرف رو میرس این دو نفر این حرف را درست فهمیدنش نیدن. پس این تصور رو تو ذهن خودم اصلاح بکنیم. فرق بین موضوع و ضعیف، ضعیف احتمال داره که صحیح باشه ولی موضوع و دروغ احتمال صحت و درست بودن درش نیست این یه قسمت قسمت دوم بعضی جاها هست ما سخنان علمای حدیث رو درست نمی فهمیم صحبت ها را باید درست خون و درست ازش برداشت کرد مثلا شما در سلسله ضعیف ی آلبانی رو باز می کنید آلبانی مثلا حدیث از که سبگاه شام مثال بعضی از دو گفتن که این ذکری که شما اووردید البانی تضعیف کرده و ضعیفه ذکر که ابو الدردا یاد میکنه ام مدده از ابو رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اسکاری که یاد کردن حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت هو رب العظیم که این ذکر به طور مرفوع نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ضعیفه حتی بعضی از گفتن موضع و بعضی دیگر گفتن منکره. خدا آلبانی میگه منکره. کجاش منکره. راویانی که این اثر را رواج کردن از ابو دردا ناق کردن نگفتن که ابو دردا گفته رسول الله اثر فرموده یکی از راویان اومده گفته که ابو دردا گفته رسول الله سازم چی نیفرمودن آلباني میگه این اضافه رسول الله سازم در این اثر منکره الله این اثر دروغ یا دروغ نیست نه این اثر موقوفش آلبانی میگه صحیحه از ابو دردا صحیحه ما مشکلی در موقوفش نداریم مشکلمون کجا هست مشکلمون در اضافه این سخنان به رسول الله صلی الله علیه و سلام که ابو الدردا از رسول الله داره نقل میکنه فهمیدید پس ما باید درست بفهمیم که این عالمی که اومده این حدیث رو تخریج کرده چی رو تضعیف کرده چی رو گفته منکر و موضوعه بله نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلام منكره ولی که ابو الدردا چون این حرفی ذات بله زده سندش استریج بله صحیحه خود البانی میگه ورجال او ثقات رجال این اسناد موقف ثقاته حالا بعد امام منذری میاد تو طریقی به ترہیب میگه میگه اینم ذکری که الان در یاد میکنه کسی اگر حسبی الله رو حفظ بار بگه کفایتش میشه در اون روز الله کفایتش میکنه کفاه الله در صبحگاه شامگاه اینو بگه شخص الله کفایتش میکنه میگه امام انصاری میگه میگه این حرفی نیست که انسان توش اجتهاد بکنه از فکر خودش از ذهن خودش در بیاره حتما از رسول الله ص شنیده که داره میگه چون صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه حکم رو داره یعنی حکم اینو داره که عز رسول الله صلی الله علیه وسلم سلامش این نگفته که رسول الله صلی الله علیه و چین حرفی زده در نتیجه میگه چی میگه طبق قاعده حدیثی ما منظری میگه طبق قاعده حدیثی حکم مرفوع رو پیدا میکنن میشه بهش عمل کرد اینجا هست که باید تصحیح بشه خیلی از اون چیزهایی که ما میخونیم در مصطلح حدیث و در علم حدیثی که الان داریم بهش اشاره داریم میکنیم فرق گذاشتن موضوع و ضعیف فرگ بین اون تخریج علماء که نسبت به چی گفتن زیفه، نسبت به چی گفتن موضوع کجا گفته چطور گفته همه اینها را باید ما در نظر بگیریم عجله نکنیم تسرع نکنیم در این باب بس این قسمت از حدیث ما من استشاره اخوه المسلم کسی که از برادر خودش مشورت خواست و مشورت درسی بهش نداد و علیه بغیر فقط خانه او بغیانات کرده این قسمت ضعیفه هرچند که معناش را چون قبلا داشتیم صحیحه سند ضعیفه ولی که معناشی خیانت خیانت نیست من بیام از برادرم نسیحت به طلبم مشورت بخوام بعد او به بدی به مشورت بده دو تا دختره میخوام برم گاریشون این میدونه این دختره اهل دینه دیانته میگه نه اینو این فلانه چهار تا تهمتم شاد بختانم بهش ببنده نه فلانی رو بگیر که میدونه که فلانی به درد این نمیخوره چون خودش دلش با اون یکی او گناهکار گناهکار نیست گناهکاره در خیانت میکنه در اون مشورتش ما گفتیم حدیث فاطمه رو گفتیم دیگه اونم نزد رسول الله صلی مشورت خاص که کدوم یکی رو بگیرم رسول الله و مشورت بهش میده نه معاویه رو نه بوجه اون یکی رو بگیر رسان رو بگیر پس ما امانت دار بود باشیم در مشورتمون اگر امانت رو رعایت نکنیم خیانت کردیم بله قال المؤلف رحمه الله باب التحاب بین الناس حدثنا إسماعيل بن أبي عويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفش السلام حابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا اقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين سد 15 ام باب ذباب صحيح المفرد گفته ما بخاري رحمه الله واسكنه فسيح جناته باب التحابب بين الناس محبت میان مردم مردم حب همدیگر را داشته باشند باید این حب کاشته بشه باید این حب کاشته بشه با چی کاشته میشه رسول الله صلی الله علیه و salam در این حدیث ما راهنمایی میکنه حدیث 197 اذبوره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه كما جاءت الله عليه وسلم فرمودا والذي نفسي بيده اقسموا خلي جاهه شو ما منين الله عليه وسلم شنو وقسم كدن تاكيد دارن میگن یعنی توجه بکنید این سخنی که دارم به بهتون میگم خیلی عظیمه و قسم به اون عظیم رو داره یاد میکنه الله جل شانه والذي نفسی بیاده قسم به اون کسی که جان من به دست لا تدخل الجنه حتى تسلم ورد بهش نمیشه تا که مسلمان بشید و در روایت حتى مومن مؤمن جاتون بهش نیست که دیگه واضحه هممون میدونیم شرط دخول به بهشت اسلام ایمان ایمان نداشته باشید جات بهش نیست اون شخصی که یک ذره ایمان در دلش یک روز نجات پیدا میکنه از جهنم ولی شرطش ایمان داشتنه باید ایمان تو قلبش باشه بهش جای کافر نیست جای مشرک نیست بر حذر باشید از کفر و شرک خب چگونه مؤمن بشیم مسلمان بشیم این مسلمان شدن چیه چطور ما میتونیم مسلمان بشیم که وارد بهش بشیم خب شما میدونید شهادتین رو میدونید نماز رو میدونید اینا شروطه شرط یک مسلمان چیه شهادتین گفتن نماز خوندن، روزه گرفتن و زکات دادن و حج رفتن شروطه یک سری شرطها اصل ایمانه یک سری شرطها کمال ایمانه یک سری شرطها کمال مصحب ایمانه در بحث اصل ایمان اینکه نماز جزید شرط اصل ایمانه یا نه اختلافه امام محمد میگه بله شرط مسلمان بودن نماز خوندن اگر کسی یک وعده نماز را ترکت کافره یک وعده اگر باشه جمهور ائمه میگن نه کسی که یک وعده را ترک بکنه این شخص کافر نیست حالا این اختلاف هست بین علما ولی اینکه شهادت شرط اصل ایمانه این که محل اتفاقه شرط کمال ایمان کمال واجب دیگر عبادت ها مثل روزه کسی مثلا یک روز دو روز روزه نگیره نه اینکه مطلقاً روزه نگیره مطلقاً نماز نخونه چون البانی هم به این قسمت اشاره میکنه میگه که کسی که اصلا نمازخونه مسلمان نیست شهادت این رو بگه میگه نماز می ولی کافر مسلمان نیست اختلاف توی چیه اون شخصی گاهی نماز میخونه گاهی نمیخونه این اختلاف توشه شخصی که مطلقاً روگردونده از نماز اون شخص مسلمان نیست این محل اتفاقه و این ستا تا رتبه ای که دارم میگم دلیل قرآنی داره قبلا یاد شده و الانم بازم خلاصه از روش عبور میکنم از اصل ایمان کمال واجب و کمال مستحب این برداشت علما هست أسفرمو ده الله جل وعلا دار القرآن كم يفرمو ثم ورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم ورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا مصفين يعني انهيك انتخاب شدان يعني مؤمنين أصل إيمان ورداره شو نقر مؤمننا باشان ديك جاشون بهش نيس لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا شرط الدخول بهش اسلاما أصل إيمان أصل إيمان ورداشت وشيد شهادتین رو باید بگید. شخص ایمان به الله رو داره ولی شهادتین راضی نیست که بگه مسلمان نه غیر مسلمان نیست مجرد ادعا مسلمان نمیشه باید شهادتین رو نطق کنه فمنهم ظالم لنفسه اولین رتبه کسی که در حق خودش ظلم کرده در حق خودش ظلم کرده اصل ایمان رو داره مؤمن هست ولی کن روی پایه شرط کمال پاش لغزیده. ایمانش کامل نشده. در حق خودش ظلم کرده کوتاهی کرده در اون اسلامش فمنهم ظالم لنفسه ظلم کرده در حق خود ایمان داره ولی ظلم کرده نماز سر وقت نخونده ناسزا گفته غیبت کرده ظلم کرده در حق خودش, خودش. ظالم لنفسه این چیزی که الله در قرآن اشاره میکنه در بحث حراب قالت الاعراب و امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا بگید اسلام آوردیم نه مؤمن این درجه ایمان نیست درجه اسلامه اسلام ظاهره تو به ظاهر مسلمانی ولی که باطنا به درجه کمال ایمانی نرسیدی و منهم هم مقتصد کمال ایمانه ایمانت کامل شده تو اون چیزی که الله خاصه خواسته انجام دادی و منهم هم سابقون بالخیرات اصل ایمان پس اول پلی اسلام بعد کمال کمال ایمان یا خدشدار میشه پایمال میشه و یا اینکه کامل میشه کامل شد مقتصد بعد اضافه کردی بر اون چی میشه و منهم سابق سابقون بالخیرات با نوافل با سنت ها توو اضافه بر اون انجام میدی که درجه چی میشه درجه احسان چنانچه حدیث جبرئیل داریم زونوزانه رسول اصلا نشسان سن اول از اسلام پرسیدن که شرط دخول بهشت بعد از ایمان که کامل امن فمنهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات درجه چی احسان ان تعبد الله کانک تراه و لم تكن تراه فهو اراك این دو رتبه هست که همراه با اون کمال واجبت کمال مصحبر هم انجام بدی خب اینجا کمالات را یاداوری میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام ولا تسلموا حتى مسلمان نمیشید یعنی حقیقت مسلمانی نه اینکه مسلمان نمیشید و اسلام ندارید اگر محبت هم دیگه نداشته باشید مثلا کسی بیاد بگه من بغض این دارم بغض این دارم حتی بغض پدر مادرش هم داره میتونیم بهش بگیم که تو مسلمان نیستی اصلا چون اینجا رسول الله ص ص شرط گذاشته گفته ولا تسلموا حتى تحابوا مسلمان نمیشید مگر تا اینکه هم رو دوست داشته باشید نه اینجا شرط کماله شرط. کمال یعنی ایمان با این محبت کامل میشه اگر تو یک کسی را دوست نداشته باشی مؤمنی را دوست نداشته باشی تو کافر نمیشی ایمان ات اسلامت ازت گرفته نمیشه ولی که اون اسلامت میشه ناقص این اسلامت رو باید کامل بکنی چطور کامل میشه با محبت و افش السلامه تحاب و این محبت هم حاصل نمیشه مگر با سلام کردن ما هم دیگه سلام بکنید رسیدید مؤمنیید شما اهل ایمان به هم دیگه رسیدید به هم دیگه سلام بکنید و رسول الله صلی الله علیه و آله از باب گشتد و یادواری میگن و حق دوامی کمتر از اولی نیست در سلام کردن رسیدید به هم دیگه سلام علیکم رفتید هم سلام علیکم حق دومی از اولی کمتر نیست به هم دیگه رسید سلام بکنید صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلام درختی میومد فاصله بینشون خودشون میگن میگه وقتی که بعد از اون درخت دوباره به که فاصله میانداخت دوباره به هم میرسین دوباره میگفت سلام علیکم حرصشون بر عمل کردن به توصیه رسول الله صلی الله علیه و وسلم اینکه این سلام افشا بشه یعنی علنی بشه این سلام افشا بشه یعنی علنی بشه ایمانمون پس کامل نمیشه تا اینکه محبت همدیگه رو داشته باشیم و محبتمون هم به کمال نمیرسه تا اینکه سلام بین ما علنی بشه و ایاکم والبغضه بر حذر باشید از بغض از کینه از کدورت بر حذر باشید و ایاکم والبغضه بر حذر باش از اینکه سیاه بشه تاریک بشه نسبت به کسی ندی به شخصی نبخشش کینه ای نباش ولا تجفئ قلوبنا غلا للذين غل كدورته کینه است صفات مؤمنین اینه که میخوان که نسبت به مؤمنی خصوص رسول الله صلی الله علیه و غلی در قلبشون نباشه صفات مؤمنین نباید غل در قلبت باشه نسبت به کسی و ایاكم والبغضه الا انكم تبغضوا لله باشه شخصی بدعتی معصیتی دیدی اهل مشروبه اهل رباس تو بغضش رو داری به اندازه اون بناه معصیتش نه به ذاتش نه به فترتش نه به سرشتش نه به شکل شمائلش برحذر باشید از اینکه اهل کینه و کدورت باشید به خاطر مسئله دنیا نه مسئله دین به خاطر دنیا بر سر دعوی ارس و میراس فا انا هی الحالقه بغض همونطور که رو میتراشه، بغزم کینه و کدورت دینتون رو میتراشه لا اقول و تحلق و شر. نمیگم سر و موهاتون رو میتراشه ولیکن تحلق و دین دینتون رو تیغ میزنه یعنی دینتون رو میگیره بغز این خطورت و خطرناکی بغزه وقتی که اون بغض و کینه و کدورت بر سر قبیله و محله و شهر و قوم و نمیدونم دعواهای دنیاوی باشه برحضر باشید که نسبتی به کسی اگر بغضی دارید اون بغض رو از دل خودتون پاک بکنید وگر نه یکی از شروط وارد شدن بهش دلتون ناقص میشه دو تا بیت شعری هست اینجا حسین عوائشه شاگردنیش خالبانی نقل میکنه در شرح این حدیث میگه در بحث در بحث دوستی و همصحبتی هست میگه چطور برادران خودش رو در بحث میکنه, میکنه این کنتو بینهم شعرتو بلذتن راوت شغاف قلب من ینبوعی لواذاق ها اهل العروشی تجهزو یبقونها بجیوشهم درووعی بحث اخوات برادری میگه که من با برادران خودم این کد میگه لذت میبرم در لابلاه قلب عروق خودم رقایق قلب خودم احساس خرسندی و خوشحالی میکنم از اینکه باهاشون نشستم برادر ایمانی خودم رو دیدم و میبینم لواذاق اهل العروشی تجهزو اگر اونایی که کاخنشینان قسنشینان اونایی که پادشاهان اگر بدونن با شمشیر و با نیزه میان با جنگ با ما یبغونها به جیشم و درع با ارتششون می میومدن کیم دوستی و اخوت و محبت را از ما بگیرن یعنی محبت لذت داره برای خودش محبت ایمانی لذت داره برای خودش ماها باید از هم دیگه لذت ببریم باید با دیدن هم دیگه خوشحال بشیم خوشسرن بشیم دلمون خوش بشه مؤمن باید چینی باشه اصفاته اونهایی که ایمان در دلشون کامل نشده اینه که لذت ایمان نمیبرن لذت از دنیاشون نمیبرن شما الان اینجاستید حدیث رسول الله رسول الله علیه و سلم میشنوید الله مقایسه را در قرآن یاد میکنه اما هو قانه تن انا الیل ساجدا و قائما اون کسی که شب هنگام به تهجد ایستاده و اون شخصی که نه بعد میگه حالی سوولد یا علمونه والدین علممون مساوی اونایی که میدونن و نمیدونن اون کسی که اهل تهجده از آخرت میترسه و تعجدی ساده مثل کسی که نمیدونونه و نمیهام نیستن. شمای که اهل از جدید اینجا محبت همدیگه رو دارید فلله محبت همو دارید. آیا مثل اون اشخاصیان یعنی که سر سفره مشروب نشستن هر کدوم از اینها دنبال اینه که چطوری از اون دیگری انتقام بگیره و کسی به دیگری اعتماد نمیکنه. جامعه خودمون درAzerbijjan اونایی که اهل دین نیستن، اهل ایمان نیستن. فقط داره خودخوری میکنه طرف، فقط تو خودش داره میریزه، به هیچ کسی اعتماد نداره، از سایه خودش هم میترسه. برخلاف اهل ایمان. نشست و برخاستشون در یک مجلس سنشون سر سفر نشستن با هم دیگر لذت میبرن، خوشن، و خرسندن، و خوشحالن. این خوشحالی اهل ایمانه، این خوشحالی اطاعت و عبادت. هر کسی اینو نداره، این از چیه؟ از مزایای دینه. از مزایای دینه که در مقابلش عجر و پاداش گذاشته. اجر و پاداشی که سبب کامل شدن ایمانت میشه. اون کسی که اینو نداره ایمانش ناقصه. ایمانش مشکل داره. و در مقابلش این پاداش ازش محروم میشه. حال المعلف رحمه الله باب الالفه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب صدو شنزهمين باب أرز أبواب صحيح أدم مفرد إمام بخاري رحمه الله باب الألفة ألفة محبات صدو نوضهجتمين أسار عز بن عباس رضي الله عنهما كم يقول النعم تكفر والرحم تقطع ولم نرى مثل تقارب القلوب هذا الرواية إن النعمة تكفر والرحمة وإن الرحمة تقطع هذا تتأكيد إنه ومده هذا البعض في النعم نعمتها كيف نعمتها حسيه؟ كيف نعمته مع نبيه؟ كيف نعمته إيمان وتعقباه؟ كيف نعمته أن لقمنان وأن أبكي مينوشي؟ النعم تكفر حق الشكر سباس إله إذا النعمات بجوة ورد النميشة بندگان سفاس اون نعمت ها را ادا نمی کنند به جون نعم النعم توکفا اهل دنیا نعمت به چه شش نمیاد موبایل داره تو خونه میخواد موبایل عوض بکنه موبال داره دستش میخواد موبال عوض بکنه این موبایل اون موبال این اون موبایل خسته میشه ملول میشه تکراری میشه هی میخواد عوض بکنه لباس حسن تو زن ها این قضیه به یک رنگی و سوار نمیشن هر روز میخوان رنگی دیگر باشه نه که هر روز هر وعده صبح یه رنگی ظهر یه رنگی دنبال تنوع دنبال به قول خودش ست کردن باید شلوار این رنگی باشه باید دامن این رنگی باشه باید پیراهن این رنگی باشه باید نمیدونم چادر این رنگی باشه نفسشون مستقر نیست راضی نیستن از اون نعمت فقط دنبال تنوعن دنبال اصل پوشیش خودشان نیستن فقط دنبال جلوه ها هست فقط این ظاهر را گرفتند یا علمون ظاهر من الحیات الدنیاین بس به بس به مشرکین فقط ظاهر دنیا را گرفتند فقط دنبال تظاهر و ظاهرن به معنای توجهی نداره الله جل شانو در قرآن مرا گوش میکنه لئین شکرتم لازیدن نکم ولئین کفرتم این عذابی لشدید شکوزار بودید حق شکر و نعمتی که به شما دادیم ادا کردی و نمازت و اون عبادتت ذکرت روز و نیازت ادا کردی و او را از حرام دور نگه داشتی و اون چشمت به نا نگاه نکردی و اون گوشت به اون آواز و آهنگ گوش ندادی لا این شکرتم لا نکن بهتون بهتر میدم و بیشتر میدم لا این شکرتم این شکر شکر نعمت اینه در مقابل اون نعمتی که بهت داده اون چشم در غیر از اون طاعت خوندن و مطالعه قرآن و حدیث و بردن از اون نعمتایی که بر تو حلال همسرت رو ببی باتشوات الرببين اما اقع در حرام قزاش دي تو در تو دو چارك كفران شو دي والنعم تكفر كفران نعمته نشكرانش چشمت النقاه نام حرام كار دي والنعم تكفر تو مؤخذ بيشي ولئن كفرتم كفران نعمته انا عذابي لشديد بدون العذاب والله درناك ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم ماله والله دارناكا. داره یاد میکنه برای اون کافرش و مشتکش میگه فکر نکنید مالی که داریم میدیم در اون دنیا به اون کافر و مشتکش خیریت توش مال خود مال به ذات خودش خیر نیست خوب نیست خوش نیست به ذات خودش چرا چون اساسا از دنیا ملعونه کل دنیا ملعونه الا اون چیزی که چی الا ذکر الله و الله او عالما او متعلم اون چیزی که در راه دین بیاد در نصرت دین بیاد به نفع دین بیاد اون خیریت توش نه مطلق ذات خودش این دنیا بالا پشه نزد الله ارزش نداره دنیا بی ارزشه، دنیا پس حقیره فکر نکنید اگر یک کسی صاحب مالی دیدید فکر بکنید اهل خیره یا الله خیریتشو خواسته خیر انما نوملی لهم خیر لانفسهم انما نوملی لهم ازداد و اثمان. می میدیم بهشون از مال دنیا تو اینکه گناهشون افزوده بشه نگاه دنیا نکن. دنیا هر قدم الله به تو بده سیر ازش نمیشی دنیا هم هر چقدر الله بیشتر به تو بده در مقابلش از سپاسش رو میخواد سپاسی بیشتری شکری بیشتری رو میخواد بنها اگر از نعمت های دنیوی داده در مقابلش شک خاصی که ندارن و نعم و تکفر کفران میکنن و در مقابل کفرشون و کفرانشون چی دارن این عذابی لشدید حساب دردناک و سختی خواهند داشت پس مغرور و مغتر و فریب ظاهر را نخور و دنبال ظاهر و ظاهر نمایی نباش به دردت نمیخوره بلکه تو را همچون اون مشتکون کافر میکنه که نمیتون از پس سپاس اون نعمت بر بیاد نعمت ما نمیتون از پس سپاسش بر بیاد شرع جایگزین گذاشته برای سپاس اون نعمت هایی که الله بهمون به داده در مقابلش ما را راهنمایی کرده به یک سری عبادت ها که سپاس و نعمت ها بجا بیان مثل نماز ضحا و رکعات رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایان شما 360 مفصل تو بدنتون دارید مفصل مفاصلی که بین دو تا استخوان با هم دیگه واسط شدن یک از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلام علم ممروز هم تایید میکنه که بدن انسان 360 تا مفصل توشه. رسول الله صلی الله می فرمایان بر هر مفصلی از مفاصل بدنت صدقه ای هست یعنی تو در مقابلش باید صدقه بدی که شکر این نعمت بجا هر روزت میگه شکر این نعمت را چی جاش میگیره؟ اون نماز دوحا نماز چاشت راه هم برات مشخص کرده که چطور تو شکر گذار و سپاس گذار باشی اگر نکردی تو شاکر نبودی نعمت هست انسان کفرانش میکنه زیر پا میگذاره در مقابلش ناشکره و رحم تقطع رحمه ارحامه چنانچه ما قبلا مفسد برای باره ارحام گفتی. مادر خواهر خاله هست عمه است امو هست دایی هست, هست. اینها حق و حقوق دارن که ما باید حق حقوقشون رو عدا بکنیم رحمی که الله گذاشته خانواده ها به هم دیگه وصل بشن ما اسباب فصلشیم نه وصلش قطش کردیم چی چیز رحم را قط می دنیا نه دینا دین وصل میکنه ولی دنیا قطعش میکنه. کنه گفتم سر دعوه های دنیا و الى آخر و معصیتم همینطور ده تا خواهر و برادرن به خون همدیگه تشنن این میاد زیرابی این میزنه اون یکی زیرابی این میزنه به هیچ سراتی مستقیم نیستن و سر یک سفره جمع نمیشن همه از یک رحم از یک کمر خارج شدن خواهر و برادرم ولیکن اون اخوت اون محبت اون الفت اون سمیمیت دینی به نشون نیست ایمان نیست که بین اونها جنب بکنه همه اهل دنیا شدن چون اهل دنیا شدن چون صاحب معصیت و گناه شدن این مشروب مینوشه این بد حجابه این برادر با این خواهر مشکل داره این خواهر با اون خواهر دیگری مشکل داره بیش سراتی مستقیم نمیشن چرا؟ چون اهل دین نیست معصیت یکی از اسباب قطع ارحام یکی از اسباب برداشت شدن الفت و سمیمیت بین افراد خانواده است. کفران عمده کفران عمد از نتیجه هاش چیه؟ قطع ارحام قطع ارتباطات قطع سمیمیت ولم نرم مثل تقارب القلوب چیزی مثل نزدیک شدن قلبها به همدیگه باشه. قلب ها با چی به همدیگه نزدیک میشن با ایمان با تقوا. حالا اسباب زیاد داریم ما در شهر اسبابی که شرعی برای ایجاد الفت و ایجاد الفت گفتیم که یک مقصد شرعیه. یعنی الله از ما طبیده از ما خواسته که ما همدیگر را دوست داشته باشیم رفیق همدیگر باشیم دوست همدیگر باشیم سمیمییت دو با همدیگه داشته باشیم. تو عمل مدرفتر متحمل بکنیم اگر اختلاف سلیقه داریم گذشت بکنیم در مقابل اون اختلاف سلیقه ها الفت پیش نمیاد جز با ایمان لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبه لو انفقت ای محمد علیه الصلاه و السلام اگر تو هرچی مال است در دنیا میدادی برای اینکه این صحابه اینجوری با هم دیگه الفت داشته باشن این الفت به وجود نمیومد الفت را الله به وجود ورده چرا به وجود ورده؟ چگونه به وجود ورده؟ با ایمان شد چون مؤمن شدن الله با این ایمان این الفت رو برقرار کرد پس ایمان نباشه اون الفت هم نیست ایمان نباشه الفت هم نیست پس اولین چیزی که الفت میاره که شرع از من خاص الله از من خاص اون الفت داشته باشین اولین چیز ایمانه دومین چیز پایبندی به اون ایمانه مثلا الله جل و علا در قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوه تعاون داشته باشید در نیکی ها و هم دیگه بر بر و خوبی و تقوا من بشینم تو خونه بگم به من چه برم برای مردم حرف بزنم حدیث بخونم قرآن بخونم به من چه این عالم بگه شونه خالی بکنه اون یکی هم از تحصیل علم شرعی شونه خالی بکنه چی میشه آخر عاقبت چی میشه بغضاوت کدورت کینه مشاققت اختلاف دین اختلافات رو حل میکنه پایبندی به دین دلها رو به هم دیگه نسیک میکنه همچنین حقوق حالا چه حقوقی که الله به گردن از نماز اطاعت و, و چی اصحاق خانواده به گردن ما دارن این سری چیزا ظاهرا استو تراسو سفره درست میکنید به هم دیگه میچسبید بعد چی هشدار میدن واسو صلی الله عليه و سلام استو تراسو و تقارب لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم لا تسوون صفوفكم سفره درست میکنید به هم دیگه میچسبونید اگر نکردید الله بین قلبهای شما تفریقه میندازه صاحره ظاهرتون اصلاح نشود باطنتون درست نمیشه ظاهر را اصلاح بکنید نمازه جلوه الله هستی بکنید ظاهرت با درست بشه اگر ظاهرت با الله درست نشود تعاملت نماز طاعت درست نشود چی میشه اختلاف بین قلب ها میفته پس استقامت بر طاعت و عبادت خیلی مهمه در تعالف بین قلوب در ایجاد محبت ها همچین در بحث حق و حقوق والدین اگر من بخوام سرسره سر سرسر پدر مادر بکنم با حقوقشون با نفرمانیشون. و همچنین در مقابل فرزندم همسرم چی میشه الله از من خواسته که با آنها با نیکی رفت و قلت كلهم اوفن افم نگم وخفض لهما جناح الذل من الرحمه در مقابل اونها رحیم باشم و بالهامو فرش میکنم دستامو فرش میکنم یعنی در مقابل اونها سرخم کنم نه که سرکش بشم اگه سرکش شدم چی میشه اون الفت از بین میره اون محبت از بین میره کسی که در مقابل والدین خودش گستاخ شد از باب اولاد در مقابل برادرش خواهرش گستاخ میشه پس اینقدر پدر مادرش نمیدونه و نمیبینه از باب اولا دیگرارا را لگد مال میکنه در اون حقوقی که به گردنش دارن شهر برای ایجاد الفت خیلی توصیه ها داره و یک مقصد گفتم شرعیه چرا در شهر قاداش گذاشته شده اگر کسی به عیادت مریض بره شما اگر به عیادت مریض برید روز قیامت الله جامعه سبز را بر شما میپوشونه از عیادت مریض از جنازه حق مسلمان بر مسلمانه تأکید بر طرفتن تشییع جنازه حق و حقوق مسلمانه حق و حقوق اگر پایمال بشه اون الفت از بین میره این گلایه داره این سر فلان عروسی اون میگه سر نمیذونم عظام نمیاد الفتا از بمیره میره پس ما باید دنبال الفت باشیم دنبال صمیمیت باشیم دنبال این قلب ها رو با هم دیگه قلبها رو صاف بکنیم پاک بکنیم تمیزش بکنیم سوسوشو ببینیم با ایمان با تقوا با پایبندی به دین و شریعت الهی تا اون صفح میان ما برقرار بشه و از همدیگه لذت ببریم و زندگی رو خوش ببینیم، زیبا ببینیم، دلتنگ این دنیا نشیم و خودمون رو بدبخت و خوار نبینیم مثل اون فصاق و فجار که هر چقدر از مال دنیا بهشون بدی سیر نمیشن و هیچ وقت راضی نمیشن و دلشون قرار نمیگیره، آرام نمیگیره، با هیچ نعمتی سرشون نمیاره، نه اون موبایلش، نه اون ماشینش، بلکه اون ماشین و اون نعمت‌ها هرچه بیشتر الله بهشون میده، سرکشیشون بیشتر میشه، غرورش، کبرشون بیشتر میشه. ما باشیم و بدونیم که الله جل و علا از حکمتاش در شرعش غیر از اون نماز و اون عبادت، و اون روزه از حکمتاش در شرع اینه که همه مسلمان بشن و اون مسلمانی، مسلمانی اخوت بیاره با و عباد الله اخوانه نو چرا غیبت حرام شده به خاطر کسی کینه از کسی به دل نگیره چرا نمامی حرام شده به خاطر که کدرت ها از بین بره بغض از بین بره این هدف اسلامه هدف اسلام اینه که ما یک دسته و یک جمع بشیم ید الله مع الجماعه تأیید تایید و نصرت الهی هم بر جمع یک جمع بشیم یک دست بشیم یک پارچه بشیم پنکانا به هم سبحان الله والحمد لله صلی الله علی و علی محمد